بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين أما بعد قال رحمه الله ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يبشر أصحابه بمجيء شهر, شهر رمضان ويخبرهم عليه الصلاة والسلام أنه شهر تفتح فيه أبواب الرحمة وأبواب الجنة رسولة الخبار بك درهای رحمت باز شده درهای بهش باز شده و در روایتی درهای آسمان هم در آسمان داریم هم در رحمت داریم و هم در بهش داریم باز میشه و تو غلق افواب جهنم درهای به... جهنمم بسته میشه و تو قل في الشياطين درهای جهنم بسته میشه درهای رحمت باز میشه درهای بهش باز میشه, بهش باز میشه، یعنی که درهای بهش باز میشه اینا خیلی مهمه خودم وقتی که تو الفاظ احادیث ما در قدم می‌کنی وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که در رحمت باز میشه واضحه در رحمت باز باز میشه چون الله توفیق عبادت به تو میده تو بیشتر به عبادتت برسی دستای شیطان بسته شده سبب میشه که شیطان دیگه تو رو وسوسه نکنه که به کار خلاف بری نمیدونم گناه انجام بدی توفیق بهت میده که عبادتش رو انجام بدی خب این در رحمت باز شده بر تو و اون عملی که تو انجام میدی اجرش هم برابر بشه برات چون رسول صلح صلح صلح می گه. خدا میگه میگه خداوند گفته تمامی اعمال ثوابش مشخصه الا روزه الا صوف فانه له او اجزی خود خدا خدا میگه میگه الا روزه که برای منه و من خودم پاداش میدم حالا در بعد یعنی یک تا 700 و بدرد تا اونجا که خودم بخوام یعنی هر قد خودم بخوام چقدر باشه چقدر بهمون پاداش برات در مقابل روزمون برمیگرده به نوع روزه‌ای که ما میگیریم نوع روزه‌ای که ما باید بگیریم مهمه به خب رحمت های رحمت به اون شخص روزدار باز شده که توفیق اون روزهی داشته باشه یک ای که من یعنی حیقتش حالا در ضمن متنم قاعد اومد بهش اشاره خایم کرد بحث روزه خیلی شاید مثلا ما میگم یعنی رمضان را به عنوان یک عادت بهش نگاه بکنیم خود این عبادت رو شما در نظر بگیرید یک شخص از صبح بلند میشه لله نمیخوره لله نمیوشه بدنشو پاک نگه میداره زبانشو پاک نگه میداره دشنام نمیده فحش نمیده غذای حرامی تو دهنش نمیره خب اینجا هست کی رسول الله میگه سته دعا هست که رد نمیشه که از اون دعاهات چیه وصایم حتی افطر روزه دار تا اینکه افطار بکنه حتی یفطر خب این روزه داره که تنش پاک نگه داشته اون دار. اون حدیث یاداتونه که همه میدونید مطعمه حرام مشروبه حرام ان یقول شخصی که در بیابان رسول الله مساجدن میگه که رهش بمونه پر از گرد و خاکه پیرهنش pore پوره شده در حاجت و نیاز غذاش حرامه نفیدنش حرامه چگونه الله عز و تو جواب بکنه روزت وسیله ای برای اینکه دعات مستجاب بشه چون تو پاهر شدی تو پاک شدی پاک شدی از ناپاکی های حسی و معنوی ناپاکی های حسی از غذای حرام نفیدنی حرامه نو از ناپاکی های معنوی، از غیبت، از تغمت، از بغتان، از اون دعوا، از اون خصومت، از اون ناسزاگوی، از اینا تو خودت رو پاک ساختیم. اینجا هست که تو بنده حقیقی شدی و بنده حقیقی، الله دستش از صفر و خالی بر نمیگه. از الله یک صحیح من عبدی اغارف عیده عبد، بندهش، بنده حقیقیش، که دستش رو خالی بر بگرداده، این از وجلتهای رمضانه. احساس که قدر این رو میدونه روزش مثل اون کسی که این قدرها رو نمیدونه، اون کسی که نمیدونه این فضیلتا. ارزش این فقط فهم و این این رو نداره. مثل اون کسی که میدونه، نه والله مثل هم نیست. اون کسی که میدونه این روزش سبب این فضیلت میشه، بیشتر موازی روزش بود که نشونت من این روزم حرام بکنم. با یک دعو، با یک ناسازگویی، با یک غیبت، با یک تهمت، با یک نگاه نامحرم، تربیتش سبب میشه که خودت را تربیت بکنی بر عبودیت خدا بر بندگی خدا این یعنی بزرگترین بزرگترین احداف رمزانه ترورش بر بندگی خدا بند. شخص چخص مؤمن خودش را ترورش بده تربیت بکنه بر بندگی خدا بن. حقیقت بندگی ها نه بندگی فقط سرش رو بزنه با. مثل یه خروسی منقارش رو بزنه به زمین بیا بلند بشه بگه من ترامیش خوندم نه عبودیتی که درش هدف باشه حالا وتغلق فيه أبواب جهنم وتغلق فيه الشياطين ويقول صلى الله عليه وسلم إذا كانت أول ليلة رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب فاتك رمضان رملة إذا كانت أول ليلة رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب دارها يبهش باض مشي بداري عندون دارها يبهش تم بس فلم يغلق منها باب در بهشت باز میشه یعنی در خود بهشت باز میشه یا اینکه منظور اینجا معنا هست معنویت یعنی اینکه توفیق به عمل بهشتیان برای ما آسوم میشه و اون در برام ماز میشه در توفیق به عمل اهل بهشت که سبب بشه ما بهشتی بشیم هر دو تا قول رو ما داریم هر دو تا قول ما در شروحات اهل سنت داریم هم این که در حقیقی بهش باز میشه واقعا درهای بهش باز میشه ثمرش یعنی رمضان اومد اول شب رمضان در درها... تا آخر رمضان در... در تمامی درهای بهش باز میشه یکی از اون درها هم برای در ریان در روز داران اصلا تمامی درها نه تنها در ریان تمامی درها باز میشه قط حد ابواب الجنه ابواب الجنه درهای بهش فلان میغلق منها بار. از اون در هیچ کدوم بسته نمیشه چه سمره داره چه حکمتی داره رمضان رو مرد و حقیقتا در بهشتم باز شده نا ما قبل از این که حکم بر آفرینش خدا بدیم این آیه را جلو خودمان بذاریم لا يسألو عما يفعل و هم يسألو فعل خداست تو نمیتونی بگی چرا خدا در بهشت رو باز کرد چرا خدا گفت نماز بخود چرا خدا گفت روزه لا يسألو عما يفعل حق نداری اجازه نداره خدا رو له سوال ببری یعنی اینکه دنبال حکمتش بگردیم مشکلی نیست این که بگه حکمتش چی هست که در بهش باز میشه حقیقتاً در رمضان اگر عقلت میکشه درک میکشه بسم الله کمترین چیزی که ما میتونیم برداشت بکنیم از اینکه در بهش باز میشه کمترین چیز رحمت و تشویق به اینکه ای مؤمن سارعوا لمغفرت من ربهم ورحمته بشه تابید کمترین چیز این که این شتاب را در ما ایجاد بکنه خداوند ای مؤمن در را برای تو باز کردم این در بهش باز شد الان تو بشتاب. تاب با چی؟ با این روزت با اون تحجدت این ها از دست ندی این در بهش برای تو باز کردم این حد اقل حکمتی که ما میتونیم از این لفت بفهمیم یک بشارتیه برای روزداران برای اهل رمضان، برای روزداران خدا در را بهش را باز کرده. پس ای بنده تو کوتاهی نکن در مقابل این دری که برای تو باز بزاشتن خود تو محروم ازش مساز خیلی مهمه فتوا یا علما وقتی انسان نگاه میکنه مثلا در احکام همین بحث چه نام داریم فضیلت رو میخونیم در بحث احکام میاد کسی که نماز نمیخونه حکم روزی گرفتن شیخ امروزمی چی میگه؟ میگه روزش بگیره نگیره فایده ای نداره چون نماز نداره چون قبل از ما که حسق معم درست من و بده نه ما درس بده نش برمیگرده به نماز اگر نماز درست نگی اما چون بین شخص و بین فرد و بین ایم این بین ایمان و کفرش چیه نمازه من که فقط کثر و نماز نداری روزه به دلجیک این هست که شخص مؤمن نه اینکه فقط روزه را بگیره بقیه را رها بکنه این در بهش باز شده یک در بهش فقط در روزه دارانه در نماز خانه و اونایی که صدق میدن و زکات میدن و اون درها هم هست فراموش نکن اون در اولت که در ایمان به خداونده را فراموش نکن اون در نماز را فراموش نکن اون در محروم شدی از همه درها محروم میشی قدم روزه بگیری و بعد از اون روزه نافل بگیری و دردن نمیخوره در اینم میگم رفتن تو خلاف های علماء این کفت تو سارت صلاح اصغر و اکبره نمیگم که اشتباهه ولی میگم اینجا جایش نیست خوون وقتی یک دعوتگر, دعوتگر یک اممی صحبت میکنه باد رو پسریش باید پوسکننده بهش بگی روزه میگیری با نماز نماز فراموش نکنینخصوص آنان بحث نماز میاد از نصیحت های شخبرن باد و در این مد بحث توصیع به که شما و خواهدم پس این دو تا قول ما داریم در بحث جهنم من میتون اینکه درهای حقیتی جهنم باز میشه چطور الله عالم. و همون دو تا قولی که ما اونجا داشتیم همون دو تا قولم اینجا داریم اینکه در حالی حقیقی جهنم بسته میشه و اینکه معنوی این در بسته شدن با اونم اینکه توفیق گناه انسان پیدا نمیکنه الا اینکه دیگه شخص از ما به انادت مثلا بخواد یعنی و اون شیطانی که از رمضان بود اون هوای نفسی که قبلا رمضان بود دیگه در رمضان دیگه اون هوای نفسی نیست که تو رو تحریک بکنه و بکشه به جهنم الله در جهنم و اون دعيات و اون اسباب و وسائلی که انسان رو بکشونه به طرف جهنم اون درها رو بر مؤمن می‌بنده الا اینکه خودش بره اون درو در بازو کنه الله برات می‌بنده در شب را باز می‌بنده و صفه ده شیاطین به زنجیر کشا نمی‌شن شیاطین در بعد تولد محمد صلی الله و مردت الجن و مده. جن مورد اومده جن ها متفاوته اونایی هستن که دیگه عادی نه که پرواز میکنن جن ها متفاوته که صراخ سم کنن ما انواع جن داریم اینجوری اومده شروطین بعضی علما خاصش قرار دادن چون گفتن که اینجا مطلق مفصل اومده اونجا مبین اومده تبیین کرده که اضواب مرده الجن فقط جن که میکنن که و بعضی گفتن که نه تمامی شیخ. الله عالم. آن چیزی که اینجا آمده شاید آن این بزنگید که اینکه شخص جنده، چطوری که نمیدرند، اون حالات رو داره همچنان تو رمزان، الله عالم، از حکمتش ما نمیدونیم و نوع این زنجیرهایی که آنها بزنگید کشنده میشن، ما نمیدونیم قالا و يونادي منادي يا باقي الخيري اقبل و يا باقي الشر اقصر ولله عتقاء من النار و ذلك كل الليله و منادي نداد ميزند فرشگان الله يا باقي الخير اقبل يا باقي الشر اقصر بعد خود خداوند هست که صدا می یعنی خداوند ما رو فرا می هی hey, کسی که اهل خیری الله خیریت تفاسته بشه تا به سوی عمل نیک کردار نیک و یا باقی شغل اقصر و ای کسی که خیرخواه نیستی شرخواهی دنبال شرگی کوتاه بیا دست از شر بکش ولله عتقاغ من النار و دلک کل لیله هر شب الله بردگانی داره که از جهنم آزاد می سازه وأنا الله مراد أن جند الناس قصوى القرار بده كحرشف ويقول عليه الصلاة والسلام جاء جاءكم شهر رمضان شهر بركة يغشاكم الله فيه وينزل الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب الدعاء ينظر إلى تنافسكم فيه فيباهي بكم ملائكته فأرو الله من أنفسكم خيرا فإذا الشقيّة من حرم فيه رحمة الله حديث زيف شیخ الغنی رحم الله میگه موضوع دروغه اختلاف علما در درجه ضعفش شیخ الغنی رحم الله میگه موضوع اینه چه در زاویه دروغه میگه شیخ الغنی باز خود شیخ داره در ضعفش ولی ثقه قول جمهور علما در فضائل اعمال <سؤال> در فضائل حدیث در فضیلت اعمال عملی رو توجیه نمیکنه بلکه فضیلت عمل رو توجیه می کنه در بحث رمضان قول ظهور علماء مبدا انه كذا باب فضائل حديث زي مش حديث الدروغة؟ حديث زي چون شبه باز حديث موضوع ميگه حديث ضعيف حديث موضوع به اتفاق روايتش هم كثير نقل حديث من ما روى عن هذا مسلم ان رسول الله عني حديثا يرى انه كذبه أحد الكاذبين كثير حديث ناقص من رساله الدروق مش خودشي كاز دروقوانه خود الدروق مش فقط شكر به مردم نميگه اين حديث دروغه ولیکن حديث ضعيف و نه جمهور جوازشان ولی صحیح از اخبار محدثین مثلا الله میگه درسی ضعیف حتی در فضایت اعمال حتی شفاعه احنا فکر محدث مس هم در همین که میگه حتی در اعمال نیست که ما به حدیث ضعیف سناد بکنیم چون ما در احادیث صحیح رسولک کفایت شد حدیث وقتی ضعیف حدیث الان این حدیث که درست تمامی معانی که در این حدیث ضعیف مو در دیگر صحیح داریم. ضعف اسنادش، دلیل بر ضعف متنش نیست. آنها مثلاً مدرن دوکنی متنش جا کم شهر رمضان بشارته شهر, شهر, شهر, شهر رمضان شهر برکه الله فيها ماه مبارکی شک داریش نیست. شهر ماه مبارکی شه رمضاناللذي القرآن ماهی قرآن داریش ماه از قرآن در این بر رسول الله ثيان خيون زله وحده رحمت در به رحمت بود مشي گفتي ويحطن خطايا و گناهان بخشيده ميشه بله با تهجد و اون روزه گناهان بخشيده ميشه ويستجيب الدعاء دعاها دعا استجابت ميشه چنانچه در حديث قاضي داشتي ينظر الله الى تنافسكم فيه فقط نگاه میکنه به مسابقه شما دار عمال طاعت و در ترک منکرات و گناهان فيضاه بهم بهم فیباهی بكم ملائكته مضاهات بكده يعني میگه اي فرشتگان ببینيد این بندگان من نگاه بکنید میتونن گناه انجام بدن ولی کن گناهو ترک کردن و دادن عبادت و پرستش من از اختیار خودشون انجام میدن افتخاره یعنی الله به تو ای بنده جلو فرشتگانش افتخار میکنه این بنده این برای من به خاطر من دست از غذا کشید دست از نشیدن کشید دست از غیبت کشید دست از تهمت کشید دست از دعوا کشید دست از گناه و معصیت کشید این بنده من یباهی بدم فإن الشقيّة فأوروا فأوروا الله من نفسهم ثيّة بس خطر خجلا بدين شمدي خبشي فإن الشقيّة من فرم فيها رحمة الله شقي وشقاوة من ببّة وامخاء كسخار وزليل كسخ كمحرومة رحمة الله ويقول عليه الصلاة والسلام من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلا تقدري إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه اون شخصی که روزه میگیره و آن شخصی که تهجد میکنه از آغاز رمضان تا آخر و آن کسی که شب قدر شب قدر پاس میداره این ست تا شخص روزهداری که حق روزشو ادا میکنه تهجد خانی که شب‌های رمضان پاس میداره و آن کسی که شب قدر خصوصا به تهجد میذره این سه شخص چی؟ الله گناهانش را بخشیده تمامی گناهان پیشینش را بخشیده. پاداش همیشه من میگم فضیلت که الله میده پاداشی که میده خداوند پاداشی که میده پاداش به اندازه اون عمل میده فراحتر از اون عمله همیشه الله یعنی اون دنیا را اگر ما در پاداشهاش نگاه بکنیم اون دنیا رو یعنی اون بی بیارزشه که یعنی مثلا درکت نماز صبح کسی بخونه نماز سنت ها خیرون من دنیا و ما و قتل فجر چرا از دنیا و هر چه در دنیا هست بی بهتره دور کردن فضیلت داره که دور کردن ما چرا چون برای خداوند همونطور که در حدیث صحیحه در لا تدنا عند الله جناحه نبذاه ان ذره بال بشر ارزش نداره این حدیث چی میرسونه به من و شما ای بنده ای مومن بر دنیا حری نباش از نمازونت به دنیا نزن یعنی چی یعنی اهمیت این دنیای ای که بالا پش نداره پیش خداوند رمضان از خودت میزنی این همه عبادت نه در قت فجر، خیر من دنیا و این همه عبادت از تهجد، از تلاوت از اون روزه. برای فوتبال به خاطر بازی، به خاطر نگاه فیلم این تاس داشتن رمضان این قدر قدر قد رمضان رو دیدسنه این قدر شناسی رمضان که انسان به بی بیهوده بی بی گویی بپرداده هر ثلکی خواب صبح میخواب تا غروب. اینقدر وقت هست تو بخوابی؟ که میگه یه خدا کیه که قیامت برپا میشه که من حقم بیدار بشم تو دیگه خواب نیست چقدر میخوای بخوابی سه ساعت چهار ساعت صبح نماز فجر میخوابه تا کی تا دم غروب نماز ظهرش قضا میشه نماز بعد نماز عصرش شدم قضا میشه دم غروب بیدارش میکنم بلند شون نهایت تنبلی هست بی هست بی نسبت به عبادت و توات چه جو پاداش از ذات میخوای ببری این است که میگه مسارعت داشته باشید مسابقت داشته باشید برای اعمال خیر ولی این گفتن منیه کسی میتونه این مسارعت و این تشویق درش اثر داشته باشه که چند تا حدیث این ارزش ها بخونه قدر رمضان رو بدونه در مثل برای علی الی ما معف... الصقر شوئی کسی قدرش ندونه باز که باش پرندگان دیگر دیگه تا پرنده دیگر میتونه مشید بکنه اون پرنده را کباب میکنه فکر میکنه پرنده ی فهنده ای که نوع عرصش راید ایلی معافی ساگر کشوی قدر شاهی را نمیره کبابش میزه کسی که قدر رمضان را نمیدنه میخوابه ولی اگه قدر رمضان را دونست یکی نمیره حرص جیش دنیا بخوره هم مغم دنیا داشته باشه از عبادت بزنه بچی به خاطر دنیاش بعدم هم اینجا مسئله مهمی که است من صام رمضان ایمانا و احتسابا سه بار تکرار شد ایم تصفیق بکنه یعنی حرف خدا برات ملاک باشه این روزه واقعا مرا نجات میده با کنید صدق با خداوند اعتقاد اعتقاد انجام بده نه عادت اعتقاد این روزه مرا نجات میده از جهنم خداوند اعتقاد اعتقاد سبب میشه که تو تعصور حق داشته باشی. نه مذهبتون مذهبتو نمیدنم شکل شمایرتو قوم و قبیدتو فدر جد و حق. تعصور میشه که با تعصیب بیشتر، با اهمیت بیشتر، با اعتقاد بیشتر، با استواری بیشتری، به با اون تعاوتو عبادت، ایمان و احتساب، احتساب یعنی تلاش آجر. یعنی عذاب اینکه من این عبادت رو انجام میدم که به این فداش برسم. که گناهان من بخشیده میشه. الان گناهان من بخشیده میشه. تمامی گناهان حتی کبائر نه. صحیح اینه که کبائر با توبه نسور با اگر حق کسی پایمان شده با در خاصه تقاضای حلالی از اون بخشیده میشه. کبا انت تجلب کبائر را ما تهون عن؟ نكفر عنكم سيئاتك. انت تجلب کبائر، اگر کبائر را اشتراک خریدی دوری و اگر انجام دادی توبه نصوح کردی، ما میبخشیم. نه اینکه فکر بکنیم که هر گناهی انجام دادیم بخشیده میشه. خیر، گناهی بخشیده میشه که سریه باشه. اما کبائر باید توبه نصوح باشه. ما لأ الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من المفلس قال الرسول صلى الله عليه من لا عمله هو الذين مفلس كيف يكون لا اجر يا رسول الله قدنا مفلسات هم المال ولكن قد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا نكونهونه كبير حق الناس هذا من حسناتي وهذا من حسناتي إن حسناتك ما يغيره ولا حسناتش ثم تاخذ من سيئاتك وتطرح عليك ثم يلقى في النار از گناهان دیگران گرفته میشه به دوش اون میشه و با اون گناهان به جهنم افتاده میشه به جهنم با گناهان دیگران حق نمیشه قال و عليه الصلاه والسلام يقول الله عز وجل حدیث قدسی يقول الله حدیث قدسی حديثك که رسول الله صلى الله عز وجل كل عمل ابن آدم له الحسنة بالعشره سبع ضعف هر عملی که انجام چند درجه الحسنه بعشر امثالها هر عملي بري داس هر حسنه يخوبي انجم ددي بين 10 حقصا بين 10 حقصا برض الله ترى فاداش ميده يعني مضاعف اون فاداش برداشت ميده الا الصيام ما غير روزه يعني روزه از حقصت بیشتر الا الصيام فإنه لي وانا اجدي به الله صل الله ميجي روزه ما من و من پاداشش ترك شهواته وطعامه وشرابه من اجلي نفيدنش شهوتش خوردن غذاش رو ترک کرد برای من میتونه غذا بخوره که هم نفهمه یا بگه من روزم روزه نیست برخلاف نماز که شاید کسی رو ببینه گفتن علما چرا سر اینکه چرا روزه استثناشده بخاطر اینکه میتونه شخص روزش رو باطل بکنه و اون نیتش ولیکن چی؟ روزه یک مسئله پنهانه برخلاف دیگر عبادت ها میتونه پنهان بکنه میتونه بگه من نماز خوندم در صحیح که همه دیدن که نماز نخونده. در اصل ولی روزه دارنم. روزه امر پنهانیه، درونته. اینکه نیت روزه داشتی نداری کسی نم بگه رو من روزه‌م. فکر میکنم تو روزه‌ای، تو عملی از تو در ظاهر ندیدن. این فرقه روزه هست با دیگر عبادتا. ها چکه که بدل حکم شرعی تو قسمه و ترک شهوات این شهوات تنها جمع هم بسری نیست. نکنید کردن غذا آشامیدن آشامیدن شهوت از اون همسری حلاله ولی که این شخص ترک کرده حالا این شهوت عامه آیا مبتلا مثلا اینجا مسئله فقيه هست که خلاف بین ظاهری هست و چهار منظر مثلا قضیه عمل السن مثلا خب شهوته از دست خارج میشه مثل همون جماع همسری آیا مبتلا روزه هست یا نه ظاهری ها میگن که مبتلا روزه نیست چون اون چیزی که در احادیث اومده چیه احادیث اومده وقتی همسری بکنه و دم وقتی ذات روزه میگیره و و کفاره که برایش وارد شده غیر از اون که روزش باطل میشه با و نه نیومده کسی که مثلا استمناء بکنه ما ما میگیم کی چی میگیم در این حدیث اومده و ترک شهوته و یا کامل نه نه و شهوتش استمناء نه و جماع هم همه اون انواع شهوت وارد میشه استلال استلال و این حرف یعنی استدلال استدلال شیخ ابن عثیمین رحمهم الله در رد قول ظاهریه چهار مثلا بر اینن که اخراج منی با شهوت چه با جماع باشه چه با استمناء معتبر روزه هست. قال لصایم فرحتان دو تا شادی داره روزدار فرحتون عند فقر شادیش وقتی که روزش رو به جام میرسونه شاد عبادتی رو انجام نه شاده که قطار بردن آبو بردن, بردن, شاده بردن شاده که داره میخوره شاده شاده برای توفیق عبادات که به جا رسول فردگاه رو این عبادت به جا شادی دنیا این گفتم این شادی وقتی میاد که علباب اعتصاب عشق برای رسول لله یعنی انجام بیدی خالصانه انجام بیدی و قدرش رو بدونی شادیت اینجا و شادیتم در روز آخرت در دنیا و آخرت مؤمن شاده و فرحتون عند لقاء ربه وقتی که رو سفید جلد الله میده اینجا رو به خاطر پروردگارش دست از غذا و آب و شهرت قیبت و نمامی و تحمد از همه چی کشید شاده تونست یک عبادتی لله فاصله داره و سالم و کامل انجام بده شاده توفیق ما شفید اگر این هایی قدر شادی یعنی شادی راستون با در خودش احساس میکنه با لذت میبره رسول الله علیه و سلم وقتی که نماز میره وقتش میاد میگفت ارحم به آیا برای بلای راحتی میکن لذت ارحم راحتی میکن راحتی یعنی چی خوشی اون خوشی که رسول لذت میبرد در نمازش ما هم باید در این روزمون لذت ببریم از این عبادتمون تبدیل بشه به یک شادی یک استقبال یک عبادتی را پاس داشتیم و درست انجام دنیم و فرحتون عند لقاء ربه، و لخلوف و فمصاهمی اطیق و عند الله من ریح المسل و لخلوف خلوف هر دوتا مده ولی صحیح اون چیزی که لغبی ها میگن لخلوف و الصائم هست خلوف در لغت معنای بویی که از دهان بیرومیاد اون بویی روزداری که بخاطر گرستگیش از سینهش میاد، اون بو نظر الله از بویی مشک نسل الله بوی دهنت که شاید بندگان الله برنجن که بوی دهنت بده الله اون بوی دهنتو دوست داره نه اینکه اون بوی دهنت خودم دوست داره قال العبد يتقرب الی من هم چنان با نوافل نزدیک میشه هر چنکی چیز حال حدیث مول خود رسول الله صلی الله علیه و آله که چی, خدا که چی خدا بند. با خداوند یعنی بنده به اون چیزی به خداوند نزدیکتر نمیشه مثل اون چیزی که برایش فرض گاردنیده، یعنی بهترین چیزی که تو به محبوب الله میشی، بهترین چیز چیه؟ فرض خود بندید. و بعد از اون فرض نوافله. اگر محبوب خدا شدی، الله صدامیده ندباره برای فرشتگانش ای فرشته اینی را حبب خواجب رید، آباد جبریل صلی الله علیه و آله. جبریل اینی را فا احبه. جبریل من فلانی را دوست دارم. برای چی؟ غیر سقامت در انجام تعلق عبادت. ای جبرئیل من فلانی را دوست دارم تو او را دوست داشته باش جبرئیل صدا میزند ای فرشتگان الله فلانی را دوست دارد شما هم دوستش می‌دارید فرشتگان او را دوست می‌دارند سپس محبتش در قلب آدمیان الله میگذاره بعد آدمیان اون شخص را ناخواسته دوست می‌دارند اینها وسائلی که در اختیار ما الله قرار داده در دست توست وقتی که تو محبوب در دایه الله شدی خود به خود مردم تو را دوست اونایی که ایمان در قلبشونه. اونجا هست که حرف شنایی از تو پیدا می اونجا هست که دیگران دیگه بد برد، از دشمنان دعوت بد حسودی می چرا مردم حرفشو دوست می چرا اونا دوست دارن؟ حسادت میاد دیگه توش. میتونه لمس بکنه این در خودت لمس کن. این عبودیت رو در خود به اجرا بدار. نمازای سنت نافلت قبلی و بعدی هست. اسکاره و شامگاه امگا، اسکاره خوابت برش محافظت بکن. ببین بعد از اون بندگان الله ترا دوست دارم یا از سونه فرندارن؟ یک از پاداش‌ها اینه محبت مردم در همین دنیا نصیبیت بیشه. غیر از محبت الله و فرشتگانش و محبت جبری نسبت ردو بخاطر چی؟ استوارید، پایدارید در طاعت و عبادت الله. و الاحادیث و في فضل سیام رمضان و قیامه و فضل جنس الصوم کثیر احادیث در فضل رمضان و روزه زیاده همین قد اکتفا می کنید. و اللهم محمدین علال محمد.